میوانه‌ای بالای بام آثار عزیز نسیم ترجمه ارسلان فسیحی، با صدای آرمان سلطان ساده کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس همه اهل محل خبردار شده بود. یه دیوانه رفته روی هره پشت بوم وایستاده. کوچه پر از آدمهایی شده بود که برای تماشای دیوانه آمده بود پلیس ها اول از کلانتری بعد هم از مرکز سر رسیدند. پشت سرشان معمول های آتش نشانی آمد. مادر ای که رفته بود بالای پشت بام هم التماس کنن میگفت پسرم عزیزم بیا پایین بربونت برم یالا گنده اصلا بیا پایین دیوانه می گفت منو کت خدا کنین تا بیام پایین اگه کت خدام نکنین خودمو از این بالا پرت می پایین معمور های آتش نشانی زود برزنت نجات را باز کردند تا اگر دیوانه خودش را پایین انداخت به بگیرندش نه معمور آتش نشانی از بس با برزنت نجات دور آپارتمان گشته بودند خیس عرق شده کمیسر پلیس با لحنی ملایم و گاه با تندی و خشونت سعی میکرد دیوانه را راضی کند بیاید پایین خواهش میکنم دوست عزیز د بیا پایین دیگه کد خودام کنین بد وگرنه خودمو میندازم پایین نه خواهش و التماس فایدهی داشت نه تندی و خشونت دوست عزیز آقای محترم یا پایین عذیتمون نکن. اینا رو باش. به جایی که منو بیارین پایین خودتون بیارین بالا. یکی از میان جمعیت گفت. خب بهش بگیم کت خداد کردیم. یکی دیگر گفت. نه نمیشه. مگه از دیوونه کت خدا در میاد. ای بابا نگفتم که واقعا کت خدا بشه. پیرمردی که به اصایش تکیه داده بود گفت. نمیشه، حالا چه واقعی کت خودش بکنین چه غیر واقعی، نمیشه این شاید بیاد پایین نمیاد پایین، من میشناسم سمینه رو یه بار که برن بالا، دیگه نمیان پایین اگه پاشا بذاره پایین، بقیهش کاری نداره نمیاد پایین یکی از پایین فریاد زد تو رو کت خودت کردیم یلا بیا پایین دیوانه بالای پشتبام شروع کرد به غر دادن نمیام نمیام اگه عضو انجمن شهرم نکنین خودم رو پرت میکنم پایین. <تصفيق> پیرمرد مرد به دوروبری هایش گفت دیدین بهتون که گفته بودم هرچی میگه انجام بدیم هر کاری بکنین پایین نمی آدم که یه بار اونقدر دیوونه بشه که بره رو هرره پشت بون دیگه پایین نمیاد. کمیسر پلیس گفت: باشه، اوزو انجمان شهرت کردیم. یالا دوست عزیز، بیا پایینو، هم کاراتو معطل نکن. نمیام نمیام پایین. شهردارم بکنین تا بیام پایین. پیرمرد گفت: دیدین؟ یه وقتی شاید می اومد پایین اما الان دیگه اصلا امکان نداره بیاد پایین فرمانده یاتش نشان ها که خی سرق بود گفت حالا اگه شهردارش هم بکنیم مگه چی میشه؟ بعد دستهایش رو را به حالت شیپور دور دهانش گرفت و رو به بالا فریاد زد بیا پایین نداش، تو رو کردیمت شهردار بیا پایین و کارتو شروع کن دیوان قری و گفت نوچ نمیام پایین میون ادمایی که یه دیوونه رو کردن شهردار چی کار دارم؟ نمیام خب پس چی میخوای؟ اگه وزیرم بکنید میام پایین آنهایی که پایین بودند پس از جر و وحثی کوتاه گفتند باشه تو رو وزیرتم کردیم خب دیگه بسته بیا پایین بیا که همه تن دیوانه دستش رو به طرف دهانش برد و شیشکی بست نمیام پایین مگه میام میونه ادمایی که یه دیوونه رو کردنش وزیر یالا دوست عزیز تو رو وزیرتم کردیم اون یکی وزیر رو منتظرتنا یالله بیا پایین مگه زوره بیا پایین رو بگیرین ببرینم توی دیوونه خونه حبسم کنین. نمیام. <تصفيق> <تصفيق> پیرمرد گفت. بی خودی خودتون رو خسته نکنین. اون پایین بیا نیست. من این دیوونه ها رو خوب میشنسم. اگه شما رو هم وزیر بکنن. شما هم دلتون نمیخواد پایین بیایین دیوانه بالای بام داد و فریاد راهن. اگه نخست وزیرم نکنین گفته باشم خودم از این بالا پرت میکنم پایی <تصفيق> از آن پایین فریاد زنان گفتند باشه نخست وزیرت کردیم پیرمرد گفت پایین نمیاد دیوانه دوباره بنای قردادم را گذاشت بعد هم گفت پادشاه هم بکنید تا بیا پایین اگه پادشاه هم نکنید خدا مو میندازم پایید حرفهای پیرمرد درست در میامند با او مشورت کردند پرسیدند. تو چی میگی پیرمرد پادشاهش بکنیم پیرمرد گفت کار از کار گذشته دیگه هر چی بگه باید گوش بکنین با هر چی نباشه نخست وزیر که شده <تصفيق> از پایین فریاد زنان گفتند برادر تو رو پادشاه کردی یا دیگه بیا پایین؟ دیوانه که روی حره پشت بام داشت غیر می داد گفت <تصفح> نمیام پایین. دیگه چی میخوای پادشاتم که کردیم؟ <تصفح> نمیام پایین نمیام. امپراتورم بکنین تا بیام پایین <تصفح> وگرنه خودم از این بالا پرت میکنم. پیرمرد گفت راست میگه پرت میکنه. فریاد زنان گفتند باشه امپراتورت کردیم شدی امپراتور ما یال بیا پایین دیگه امپراتوری مثل من میون آدمای گیجی مثل شما چیکار داره نوک نمیاب خیلی خاب چی میخوای میخوای چیکار بکنیم بگو تا همون کارو بکنیم دیوانه بالای بام گفت من امپراتورم آنهایی که پایین توی کوچه بودند، فریاد زدند. امپراتوری! حالا که امپراتورم، اگه دلم بخواد خود میام پایین. اگه دلم نخواد، همینجا میمونم. <تصفيق> نمیام پایین. کمیسر پلیس عصبانی شد. با خودش گفت. حالا که میخواد بپره خب بپره. مگه چی میشه؟ یه دیوونه کمتر زندگی بهتر. <تصفيق> ولی اگر میپرید، ممکن بود اوضابت تر بشد. فرمانده آتش نشانی از پیرمرد پرسید: الان باید چیکار کنیم؟ این دیوونه هیچ رقمه پایین بیا نیست؟ چرا؟ هست؟ چه جوری؟ اجازه بدین خودم میارمش پایین. همه کوچکاو بودند بدانند پیرمرد میخواهد دیوانه را چطور پایین بیاورد. پیرمرد رو به دیوانه بالای بام فریاد زد: اعلی حضرت امپراتور آیا میل دارند به طبقه ششم تشریف فرما شوند؟ دیوانه با لحنی کاملا جدی گفت. بسیار خوب. از در خر پشت رفتو. از پله ها پایین آمد. رفت پشت پنجره ی طبقه ششم و از آنجا به آدم های توی کوچه نگاه کرد. پیرمرد گفت. قدر قدرت آیا میل مبارک آن نیست که به طبقه پنجم تشریف ببرند؟ دیوانه گفت، تشریف می برم. همه حیرت کرده بودند. پیرمرد رو کرد به دیوانه که از پنجره طبقه چهار روم داشت جماعت را تماشا می کرد. قوی شوکت ها، آیا قصد آن ندارید به طبقه سوم تشریف فرما شوید؟ دیوانه جواب داد، بله، بله، تشریف فرما می شوم. دیوانه پشت پنجره طبقه سوم دیگر مثل آن موقع که بالای پشت بام بود، غر نمیداد خیلی جدی شده بود. انگار که پادشاهی واقعی است. امپراتور ازیموشن. آیا طبقه دوم را با قدوم خود آراسته نمی‌کنید؟ می‌کنم. آراسته می‌کنم طبقه دوم را. دیگر در طبقه دوم بود. آیا اعلیحضرت نمی‌خواهند به طبقه اول تشریف بیاورند؟ دیوانه توی کوچ آمده. بود. میان جمعیت بود. صاف به طرف پیرمرد رفت. دستش را روی شانه پیرمرد گذاشت گفت؟ پسر تو هم قشنگ پیداست دیوون دیوانه چو دیوانه ببیند؟ خوشش آید بعد رو کرد به کمیسر و گفت زود باش ببینم زود دست و پامو ببند و بفرستم دیوونه خونه. حالا یاد گرفتی چطور باید با دیوونه رفتار کرد؟ ایوانه را بردند. جمعیت کنچکاف دور پیرمرد را گرفتند. آقا شما چهجوری این کار کردیم؟ پیرمرد گفت خب آسون نیست چهل سال تو کار سیاست ورز اومده این آهی امیخ کشید و ادامه داد اگه باهم قوت داشت منم میرفتم بالای پشت بود شکی هم نمیتونست از اون بالا پایین بیا